اوزو بالله سمیه العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین الصلاة و السلام علی نبی و آله تاهرین خدمت عزیزان دانشجو خودم عرض سلام دارم روز و خیر ارز میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید ما در مبحث خودمون که به طور خیلی مفصل هم بحث کردیم بحث ایجاز و اتناب و مساوات را به طور کامل براتون گفتیم الان نموزجی هست در انتهای بحث اتناب هست این رو میخونن تا بعد یه جنبندی هم در مورد علم معانی داشته باشیم و این بحث تمام بشه میفرماید این نوع اتناب فیمایت نوع اتناب رو در مثالهای زیر بیان کن قالت آلهای قرآن میفرماید افا امنه اهل القرآ ان یعطی هم بعثونا بیاتن و هم نائمون آیا پس این همزه همزه استفخامه برای انکار کار توبیخیه یعنی اونها چرا احساس امنیت میکنه؟ نباید احساس امنیت کنند. بنابراین آیا احساس امنیت کردند اهل القرآ اهل این بریه ها این آبادی ها از چی احساس امنیت کردن ان هم بعس یعنی عذاب اینکه عذاب ما بیاد سراغشون بیاتن به هنگام شب لیلن و هم نائمون و حالان که اونها خوابند بیاتن یعنی لیلن یعنی ظرفه و هم نائمون حاله میگه اینها احساس امنیت کردند از اینکه سراغشون بیاد عذاب ما در شب در حالی که اونا دارن استراحت میکنند و خوابند، بعد دوباره میفرمایند. او امن احلالقراب باز ببینید تکتاشون آیا اهل این قریه ها احساس آرامش کردند؟ اوه امن احلالقراب ان یعطی هم بعصونا زهن و هم یلعبون خب میتونست بفرماید زهن و هم یلعبون ات بشه به جای بیاتن و هم ناهمون. ولی دوباره اوه امنه اهل القرآن ان هم بعثنا تکرار شد. بعد باز میفرماید افه امنو باز تکرار شد مکر الله مکر نه اما عذاب در قفلت که چه روز بیاد چه شب بیاد که شبش خوابند و روزش مشغول زندگی درست و هم یلعبون یلعبون فعل مزارع آورده یعنی مدام دارن بازی میکنن از این بازی به اون بازی مشغول سرگرمی دنیا هستن افهم اینو مکر الله آیا اینها احساس امنیت از مکر خدا کردن توبیخشون کرد بعد میفرماید فلا يامن مكر الله الا للقوم چرا توبیخشون کرده میگه چون احساس امنیت از عذاب خدا نمیکنه مگر قومی که خاسره زیانباره و اگر کسی خدا رو بشناسه با خدا در نمیافته خب بلا ایت اتنابون به تکرار اتناب تکرار هست فی معرض عل انذار در محل هم بوده توبیخ میکرده. فی معرض الانزار و توبیخ در تقریر المعانی نفوس سامنی چرا این کار کرده خداوند ای تکرار کرده اف امن اهل القرا امن اهل القرا افع امنو ها آیا امن احساس امنیت کردید آیا احساس امنیت کردید آیا احساس, احساس امنیت کردید چون در مقام انزار و توبیخ بوده می‌خواسته این معنا که اونها کار درستی نمی تو ذهنشون بشین. پس اتناب داره از نوع تکرار و این تکرار هم در مقام انذار و تومیخ مقبوله برای تقریر معنا در ذهن شنوندگان این نوفا ما نگاه کنیم. و ما جلال لبشر من قبل کالخولد الخلد یعنی جاودانگی الفلام داره یعنی جاودانگی تو این دنیا وله منو شما جاودانیم بعد از مرگ زنده ایم در عالم دیگه درست شو این نو جاودانگی یعنی جاودانگی در دنیا مادی میگه ما اینو برای هیچ بشری قرار ندادیم ما جعلنا له من قبلک الخلد بشری باشه قبل از تو و این جاودانگی رو داشته باشه از حضرت آدم تا تو پیغمبر ما برای هیچ کس قرار ندادیم یعنی همه میمیدن بعد میفرماید افع ان متفهم خالدون این فع یعنی بنابراین آیا آیا اگر تو میمیری که ما گفتیم برای هیچ بشری جاودانگی تو میمیری فهمول خالدون این بقیه مشرکین زنده بمونن و جاودانه بشن اگه قرار تو که گون سرسبد خلقت هستی از دنیا بری فهمول خالدون این ها جواب دانه بشن بعد میفرمایید کل و نفسی زایغت الموت هر نفسی هر انسانی زایغت الموت مرگ رو می چشن زایغت کل و نفسی زایغت این کل و نفسی زایغت این افعی متفهم الخالدون این دوتا جمله تأکید میکنن همون جمله ما اللان بشر من قبل کلخلت رو دیگه اما یکیشون اون افعیل متفق و ملخالدون تزییله تأکید میکنه اون, اون تزیله. یعنی این اگه بیاد قبلش اون باشه ما اینو میفهمیم معناشو ولی اگر اون قبلی نباشه بشه افعیل متفق و ممکنه معنای دیگری برساند این افعیمت تفهم الخالدون یعنی نه تو زنده میمانی نه دیگران شو؟ آیا اگر تو مردی دیگران زنده میمانند خب این وقتی با ما قبلش باشه معناشی میشه همه میمیرن همون کل نفس زایغت اما کل نفس زایغت المود خودش بگید مستقل همین معنا رو داره هر کجا هم بیاد به جز این معنا ندارد هر کجا بیاد به جز این معنا بر او معنای دیگری متصور نیست لذا تو جایی دیگه قرآن همین جمله اومده قبلش همین جمله و ما جل ناله بشرین من قبل کلخولد نیست این میشه جاری مجرای مثل اون میشه غیر جاری مجرای مثل نگاه کنید فیل آیت اتنابون به تزییل فی موزعین اول هما قوله افه این متفا همول خالدون و هازا تزگیل و نم یجر وابسته به ما قبل در رسوندن معنا و قوله ثانی قولهو تعالی کل نفس زائقه الموت و هو جار مجرل مثل اما این جاری مجره مثل بعدی رانی ما و خان عبودتیب عبودتیب متنبی گفته اینی اصاحب و هلمی. گفته من با حلم و صبوری خودم همراه من همراهی میکنم حلم و صبوری خودم رو یعنی من حلیم و سبورم انی اصابه با حلم. و هوه بی کرمون و این حلم من هم نسبت به من کرمه لطف منه و هوه بی کرمون این جمله و حالیه. این حال داره احتراس از یه چیزی میکنه میگه من همیشه صبورم من با صبوری خودم همراهم ممکنه از این به حضورت نمیرسه بخار نداری که میگی همیشه صبورم. میگه نه و هو و بی کرمان این از طرف من لطف به دیگرانه یعنی من میتونم صبور نباشم بخوابونم تو گوش هرکی دلم میخواد ولی اگر میبینید صبورم تحمل میکنم این لطف منه و هوبی سرکرم ولا او صاحب و حلمی و هوبی جبنون و من همراهی نمیکنم با حلم خودم حلم خودم رو همراهی نمیکنم در حالی که ترس باشه از سر ترس صبورم دستم به گوشت نمیرسه میگم بومیده آ میگن گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بومیده اینم همینطور نه اینطوری نیست ولی او صاحب و حلمی و هوبی نگاه کنید فلویت ادنابون به احتراز بی موضع. اول ما به شطره اوله به ذکر و هوبی کرمون و ثانیه ما به شطر ثانی به ذکر و هوبی یعنی این که عبارت رو به این شکل آورده که اینی او صاحب این در واقع از این وحو و بی و ولا اصاحب و حلمی و بی جبنن کل این میشه احتراس درست شد میگه من همراهی میکنم کرم خود حلم خودم صبوری خودم دارم دارم در حالی که این لطفه به دیگرم و حلم و صبوری خودم رو همراهی نمیکنم در حالی که از سر ترس باشه از سر ترس احتراز کرده دیگه که یک نفر نگه از بی بخاریش میگه من سبور و قال انابغتو ان الجعدی یا یحجو نابغه جعدی گفته و حجب میکرده لو ان یعنی لو ثبت ان این یعنی انه بعد از لو میاد فائل مثال فائل یه ثبت مقدر فینشم لو انه الباخلینه و انتم منهم راوعا راوعا تعلموا منكم متالا تعلموا منكم متالا نگاه کنید لو ان بال باخلين این راوعا خبر ان است یعنی اگر بخیل های بخیل کیه اون کسی که یه مالی رو داره خودش هم نمیخوره به دیگران هم قطعاً نمیده در این بخیله درست مالش حاضر نیست کسی بخوره این بخیل میگه اگه بخیلای عالم بخلای عالم رعاو که تو رو میدیدن جواب لور یاد میگرفتن منکه از تو المتاله متال ماتله یا ماتلو. مماطله و متالن مسل دوم با مفاهام یعنی سر کار گذاشتن ماطله یعنی اومده بود سراغ یه چیزی ازش میخاست گفت برو فردا دوباره فرده اومد گفت پس فردا ای یادم رفت دو هفته دیگه بیاد اینو میگن ماطله ها به معنای سر کار گذاشتن میگه اگه بخلای عالم تو رو میدیدن ها یاد میگرفتن چجوری مردم رو سر کار بذارن؟ از تو یاد می گرفتن. چجوری مردم رو سر کار بذارن؟ بعد اون وسط اسم و خبر یه دونه آورده و انتمن هم. تو هم از خونهایی یا داخل تو هم از جنس همون بخلایی نه اینکه تو آدم کریمی هستی فوتوفند سر کار گذاشتن بلدی نه تو هم از اون بخلایی ولی بخلای عالم مکروهیلشون به اندازه تو نیست اینطوری گفته اگر بخیلان عالم که تو هم یکیشون از سیا تو رو از تو یاد میگرفتن چجوری مردم رو کار؟ بذارن این و انت من هم جمعه معترضه فلویت بله اعتراض این جمله محل اعرابی نداره نباید حال بگیرید فقط جاعت جمعه تو و انت هم معترضه آمده جمله و انتم ها معترضه بین اسم و خبرها چون معنا نداره که این جمله حالی این جمله حال از چی بیاد برد شما معترضت بین اسم نه و خبرها لیل اسرائیلا زم مخاطب چون میخواسته زودتر مخاطب رو مذمت کن که تو هم یکی از همونه سردستشون هستی پنج و قالت لرجل یک زن عرب بادیه نشین عربی یعنی مرد بادیه نشین عربیه یعنی زن بادیه نشین یک زن بادیه نشین به یه آقایی تو گفت کل عدو لک. کبت یک به تو یعنی له کنه در به کنه از بین ببرد خداوند کل اعدو بندک هر دشمنی تو داری خدا تمام دشمنانت رو در هم بکوبد دعا کرد جمله دعاییه دیگه با فعل ماضی خب یه موقع ممکنه دشمن یه نفر کی باشه خودش آه؟ خیلی ها خیلی‌ها هستن دشمن خودشونه لذا جز برگشته گفته چی کبت الله کل عدو بندک الا نفس خدا همه دشمنات رو بکشه جز خودت یعنی اگه خودت روزی دشمن خودت بودی اونو دیگه نکشه خدا همه دشمنات رو خارو ذلیل کنه جز خودت ایه الا نفسک در واقع احتراثه احتراثه است و شما دارید می‌بینید. میگه هنه اتنابون به احتراث نیجا با استثناء احتراث بوده اونا اتنابون بله درست لعن نفسل انسان روش شد نفسل انسان تجری مجلل عدو گاه اوقات جاری مجلل دشمن بر اون میشه تجری مجلل عدو بلهو. فا این نهود فا ما نها تد او الاما یوبقه یوبقه اوبقه یعنی احلکه پس این خانم داره دعا میکنه روش شد به چیزی که اون رو از بین ببره حلاف کنه فعنها تدعوه این انها زمیر بخور به نفسها مخانوم نه از این نفس تدعوه گای و گایی و شخص رو فرا میخواند به چیزی که او رو از بین میبرد آه نفس انسان رو میکشه به چیزی که او رو از بین میبرد خود فعنها تدعوه لأن نفس الانسان تجريم العدو نقو فانها تدعوه زیرا این نفس دعوت میکنه انسان رو الی ما یوبق به سوی چیزی که انسان رو حلاک میکنه گای و نفس باعث میشه انسان خودش با دست خودش خودش رو به حلاکت بندازه خب اینم فهمیدید و قال تعالا امتد کن به ما تعلمون امتد کن و بنین و جناتن و اونون و جناتن و اونون میگه خدا شما رو امداد کرد به ما تعلمون باید که میدونید به ما تعرفون تعلمون یعنی تعرفن یعنی به ما تعرفون. خدا به چیزایی که شما میشناسید شما رو امداد کرد بعد میگه امدکون شما رو امداد کرد به انعامین چارپایانتون و بنین فرزندانتون و جناتین باغهاتون و اویون چشمه که اون باغه رو اداره میکن. یعنی دامپروری و کشاورزی که مظهر ثروت در اون موقع بوده خدا بهتون دارد. درست شو. اینجا در واقع امدکون به انعامین و بنین در واقع بدل اومده از این ما قبلی امده به ما تعلامون قومه ما خیلی چیز هست. اما انعام و بنین و جنات و عیون بعضی از ما تعلامون ولی ما خدا امداد کرده ما رو به چیزهای خیلی دیگه مثل سلامتی. میگه فلعایت اتنامون بل ایزاح بدل میشون میگه بل ایزاه بدل کام فإن فَا ذکر الانعام والبنین توضیح لما ابهم قبل از آن فی قول خداوند این درست نیست این ایضاح بعدله نیست درست به خودمون توش اتمام اما اتمامش از مواردیه که ذکر بگید ذکر بدل شده بعد از مبدل ذکر خاص شده بعد از عام ما تعلمون عام مای استفامیه. اون ذکر خاص است بعد از عام به خاطر اهمیت خاص این غلط است که اینجا داره میگه بهش بنویسید که به آیت اتنابون به ذکر خاص بعد عام به, ش... به ذکر خاص بعد عام. لطنبیه علا فضل الخاص لطنبیه علا فضل الخاص چرا؟ چون انعام و بنین و جنات و عیون بعضی از ماتعلمون است ماتعلمون خیلی چیز هاست این بعضشه ولی بعض مهم بشه چون تو اون زمان بگید این از همه من اینو خوندیم که ذکر این جمله یادتون باشه گفتیم تو فصل و وصل این جمله عطف نشده به ماقف فصل اومده به خاطر چی فصل آمده؟ گفتیم به خاطر این که بگو بدل بعض است از کل بدل بعض از کل نگفتیم تفسیر اونه که بدل بعض از کل اونجا اگه گفتو بریم تفسیر این میشه بدل بعض از کل تمام شد این غلط بود درستش کردیم که تون تو فصل و بستم اینو بریم سر دیگه جمبندی همه مطالب تمام شد چیز خاصی هم نبود بسیار بسیار شیوا و بالا هم من برای شما اینها رو گفتم حالا نگاه کنیم بریم دیگه توی اثر علم معانی که بلا قتل کلام. این دیگه درسایی که خوندیم داریم تکرار میکنیم فقط برای خاطر اینکه یه مباد یاداوری بشه می‌فرماید که نستاتی اوها بعد از دراست ساده بعد از اینکه مطالب قبل رو خوندیم میتونیم آن نقل مباحث علم معانی فی امرین نیست نیم میتونیم کل مباحث علم معانی رو تو دو موضوع خلاصه کنیم یک الان اول موضوع اول آن نه‌ویبی نقل وجوب وجود و مطابقت کلام لحال استامید علم معانی به تو میگه که کلامت باید مطابقت با شنوندگان باشه سامعین باشه میگه دیگه اینو بعد و مواطن یقال فیها و مطابق باشه با جاهایی که این کلام در او گفته میشه و یوری که لا یکون بلیغا و به تو میفهمونه که قول بلیغ نیست کلام بلیغ به حساب نمیاد ما کاند صورتو شکلش هر جور بخواد باشه باشه اصلا تو زیبایی در حد با قول خودمون تو زیبایی در حد گلستان سعدی است اما سرجاش گفته نشده مثل یکی اون دفعی هایتونه من بگونم من منو دعوت کنن تو عروسی بهم بگن آقا بیا صحبت کن من بیام آیاتی که در مورد مرگ است و فشار قبر است و در مورد عذاب اهل جهنم هست سختی جان دادن هست و این حال تو اون عروسی بکن خب آیات و قرآنه. به بسیار بیان زیبا هم دارم میگم اون همه میکنم بیارش, باید بیارش باید. چرا؟ هر جور هم میخواد باشه شکلش باشه این در جای خودش نیست فرست شد؟ مقتضای حال نیست ما کاند صورتو حتی یولای ملمقا من لذیر قیرفی قول بلیغ نمیشه حتی یلائمه مگر اینکه ملائم بشه مناسب بشه با اون جایگاهی که داره درش گفته میشه و یوناسبه حتی به جای است و به حال از سامه الگیالی و مناسب بشه با حال اون ای که این کلام براش داره گفته میشه خب و قدیما قال العرب از قدیم عرب هایی ضرب المثل رو داشتن لکل مقامن مقال برای هر جایگاهی سخنیست هر نکتهی جایی دارد. برای هر جایی سخنیست یعنی شما اگه سخن جایی رو در جای دیگه به کار ببرید هر چقدر همون سخن قشنگ باشه مثل اینکه دارو اصلا نایاب دارویه که چندین میلیون پولشه اما این دارو مثلا مال امس مال چندین تحقیقات هست و بهترین دارو اصلا سراتان خوب میکنه دردهای لعالان اما شما بیادین داروی که مال اینه بدید به یه مریض دیگری که مثلا سرما خورده داروی جرام بشتر اقلت هر چه قدرم میخواد کلام خوب باشه سر جای خودش نباشه از دایره بلاغت خارج فقط یو اکچه خبر و الان داره دیگه مثال میزهد فقط یو اکچه خبر و احیانن که ما علم اوقات یه خبر رو با عدات تحکید میاره همون طور که و قد یو به غیرتو اکیده گای اوقات بدون عدات تأکید میاره چرا؟ چرا بایی تحکید میکنند؟ یا تحکید نمیکنند؟ الان حسب حال سامه به حسب حال مخاطب حال مخاطب چیه؟ من جهلن به مضمون الخبر؟ اگه جاهله به مضمون خبره کلام ابتداییه بدون تک. او دودن یا تردده شاک و سائل متردده شاک و سائل. اینجا خوبه که یه تحکید براش بیاریم استحسانه. او انکارن یا منکر اینجا خوبه که تحکید بیاریم اصلا خوبه که واجبه تحکید بیاریم وجوبی هم هست. به حسب انکارش هم براش می افضاییم. نرخون دیم و مناحضت و حازل اصل بلا این نشوزون اما رو سمم این مقابله ایستادن در مقابل این اصل بدون انگیزه یعنی یه جای طرف. خالی و ذهن شما براش ده تو تحکید بیاری کنید کن انکاری بیاری خب بدون انگیزه این نشوزون خروج خروج است از آنچه که ترسیم شده از قواعد بلاغت اما یه جایی هست طرف خالی از ذهن بلکه اصلا معیده شما کلام رو تکیدی براش میاری اما بگید به خاطر نکته ای این خروج به خاطر نکته ای این اشکال نداره این خروج از بلائین بلاغت مثل اینکه یادتون هستش تو همه آیات و قرآن خوندیم که مگر ثم این نکن بعد از آلکه لماییتون بس دا با این جمله اسمیه و لام تأکید میکرد خب چرا؟ گفتیم لظهور امارات الانکاره علای که یه بابی داشتیم خروج الخبر درست شد ان مختزا ظاهر حالل مخاطب و این به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه امارات انکار بر او مشخص شد و مناحضت و حاضل اصل بنادائن اما تو این سمه نکن بعد از حالی ما انگیزه داریم انگیزه باعث شده که ما اینجا مخالفت با این اصل اون زده لابولی تالا پیشن رسول ایسا علیه السلام هینه بعث هم اله اهل هم تا کیه شما نگاه کنید به قول خدای تعالی در مورد فرستادگان عزت عیسی که اونها هم از طرف خدا نبی بودند فرستاد اونها رو به سوی اهل انطاکیه شهر انطاکیه در این ترکیه فرستاد این منطقه برن اونها تبلیغ کنند دین خدا رو خب یادتون این رو من مثال زدم گفتم خب اینا اولش که رفتن تو اون شهر و مردم برن درشون جمع شد اون اول همه خالی و زن بودن مردم گفتن من انتم شما کی هستید اینا ها گفتن نحن رسول ربک ما رسول پروردگار شما هستیم نحنو مرسلون ایلیکن ما به سوی شما رسولیم اونها شک کردن رسول؟, رسول چیه وقتی شک کردن اینا یه تأکید استحبابا اضافه کردن گفتن ایلیکن مرسلون شک نکنید ما فرستاده خدا به سوی شما اونا انکار کردن انکار که کردن اینا تأکید وجوبی آوردن انا الیکم لم ارسلون با اینا و لام و جمله ازم اونا خیلی انکار کردند تو سوره یاسین نگاه کنید گفتن ما انزل الرحمان و منشی این انتم الا ما انتم الا بشرون مثل خیلی صفت و سخت مقابله کردن اینها هم گفتن ر یا ای نائل با قسم و نه و لا و جمله اسمیه چهار تا تاکید گفتن به پیر به پیغمبر ما مفر انکار نکن نگاه کنید میگه وظرب لهم مثلا اصحاب خواب غله. درست شدبرا اونها مثالی بزن مثال از خواب از رو. از جاحلل مرسون موقع که اون رسولان رفتن سراه ارسل ناائلی هم اسنین ما دو نفر رو فرستادیم اونجا. فکذبوهما از تکذیبشون و ما اوننا خب و از 10 به سال سن رو فرستادیم ف قالو اندفه سه نفری گفتن نایکن مرسلو. خب قالو، اونها برگشتن این دفعه دیگه خیلی با قول خودمون انکار کردند. گفتن ما انتم لا بشرون مثلنا. شما بشرید مثل ما این خودش یعنی نفی ادعای اونها شما بشرید مثل ما و هیچ بشری رسول خدا نیست پس شما هم رسول خدا نیستید یه قیاس یه قاعده است جز جزء دوم و سومش یعنی سغراست کبرا و نتیجهش حذف شده شما بشرید مثل ما هیچ بشری رسول خدا نیست پس شما هم رسول نیستید و گفتن ما انزل الرحمان و من من زاید هست یعنی شیع خدا هیچ چی نازل نکرده یعنی شما دروغ میدون این انتم الا تک شما دروغو هستید با قصر هم گفتنید شما منحصر در دروغگویی هستید اصلا راستگویی تو شما نیست خیلی تحکید شدید کردن تو تکسیبشون اینا هم گفتن قالو ربنا یعلم و اینای نیکم نمورسد خدا میدونه که ما به سوی شما فرستادی ربنا و نای و معادل و الله خب انا الیکم لمرسلون ان داره لام داره جمله اسمیه هست قسم هست اینها ادوات عدوات به شدت کلام رو انکاری و تشتید حالا ایشون توضیح میده فَاِنَّا رُسُّلَهِينَ اَحَسُّوَ انکارَهُم رسولان خدا وقتی احساس کردن انکار اونها رو فلمر رتول در مرحله اول انکارشون خیلی سفت نگرفتن لذا اکتفا به تأکید خبر به ان و جملت الاسمیه با نه و جمله اسمیه که فقال و اینه ایلیکم مرسلون گفتن دیگه اون مرحله طلبی و مرحله به قول خودمون ابتداییش نگفت و مشخص اول ابتدایی اونها اومدن بعد طلبی اومدن بعد بگید مرحله انکار رسید مرحله انکار چون خودش داره میگه که اونها انکار کردن فکر از هما تکزیب کردن، انکار کردن فعززنا به سالس این فقال اینها در مقابل انکار اونها که اول خیلی شدید نبود با جمله اسمی و ایند اومدن به میدون اونا که انکارشون شدید شد اینام انکارشون عدوات تحفیدشون شدید شد فقال و انای رای مرسلون فلما تزاید انکارهم و جهودهم وقتی انکار اونها زیاد شد جهدشون نظیر افتنشون زیاد شد قالو ربنا يعلم و انا الىكم دمرسلو فحقد وبالقسم و ان و لام و ول الجملت الاسميهت اگرتون بشه بودام جمله اسمیه هر کجا کلام دناش بر تاکید وجودی است جمله اسمیه هم یکی از ادوات تاکید نور خوندین میگه فکر نکنید اینا چیزای پیش پا افتاده ای ها همین ها رو خیلی از گنده گنده ها نمیدونن چون اونها ممکن نه بدونن ولی این مال بلاغته ها نمیدونه میگه وقت تخفه حاضر دوائد الا غیر اهل لغت کسی که اهل زبان نباشه این زبان رو نفهمه گاهی اوقات این نکته ها براش مخفی میمونه روویا کندیه روایت شده که آقای کندی با این نگاه کنید گوه ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق فیلسوف العرب این صوف عربه کان و آسنن للمعمول والمحتسم شد با این ستا خلیفه هم دوره بوده و لغو اندخون منزلتون سامیه پیش این خلفا ها جایگاه عالی داشته سامیه تان. یعنی آلیه تان ولفلسفته والحساب والمنطق ولهندسته و الاعداد در این علوم مهارت یافته درست شد و علم نجوم و همچه علم نجوم نبقه ولیسف المسلمینه فیلسوفون غیره نبوغ یافته در حالی که در بین مسلمین هیچ فیلسوفی نبود و فی تعلیفه و هزافی تعلیفهی هز و عرصو حرکت کرده در تعلیفات خودش همونطور که هر حرکت کرد. درست شد حالا این آقای عبو عبال... عبو یوسف کندی درست شد که این همان هم با قول خودمون جای باهو مطلب داشته این رکب اله عبو عباس المبرد سوار شده به سوی عبو عباس مبرد مبرد رو که مبرد مبرد یکی از نوحات کوفیست حتما میشه شنیدید سوار شده رفته به سوی این عدیب این فیلسوفه رفته سراغ این عدیب حالا نگاه کنید این میگه هو شیخ و اهل نه و العربیه ولهو اتعالیف و تام ولهو اتعالیف و ناف افر عذب تعالیف های بسیار سویدمندی در عذب داشته و کان حسن المحاضر ملیح الاخبار خیلی خوب تو محاضرات شرکت میگه خوشنشین بوده ملیح الاخوار کسی رن نوادر چیزای خیلی عجیب و غریب ازش ریاد دیده شده و توبه فیاسنت مهتینه و خمسن و سمانین 200 شرکت منتونی هرم میگه لفته به سوی عبال عباس مبرد و قاله نه و عبال عباس مبرد گفت اینی لعجد و فیکلام العرب هشت با هشت بیا بتونه خوندیم هشت با تطویم اتنا فائده در اضافه بود اما و تطمیل فائده در اضافه نبود اگه یادتون باشه تطمیل اونی بود که اون اضافه معین نبود حشم اونی بود که اون اضافه معین بود خب کن من تو کلام عرب زیادی میبینم اضافه گویی درازگویی فقال عبول عباس اینه وجد تزاله کنون خب کلام عربی خدا بهش افتخار کرده در قرآن تو چطور این را پیدا کردی تو؟ فقاله گفت وجد تو هم یغولون. گفت من دیدم یه عربا اینطوری میگن عبدالله قائم عبدالله ایستاده ثم یقولون دوباره بعد چند دقیقه با یکی دیگه حرف میزنن میگن این عبدالله قائم یه نه اضافه کرد عبدالله قائمه بعد ثم قولون بعد یه جای دیگه دارن صحبت میکنن میکن این ان عبدالله لقائمه خواهی ستاش یکیه دیگه. فعل الفاظو هم و کرره دیگه. الفاظ تکرار شده. معنام یکیه. فقط یکیش این نداره. یکیش این و لام داره. همش هم میگه عبدالله وای سده. و قال احبال عباس. عبال عباس تو تو نمیفهمی. عباس باباتون معانی مختلفه. اینجا معانه های این ستا جمله مختلفه. تو ترجمه هم شما مختلف باید ترجمه کنید. بله اولو عن قیامهی اولی ما داریم خبر میدیم از قیامش به کسی که خالی و ذهن. و از جوابون جوابونن سوالم، دومی ما داریم جواب میدیم از سوال کسی یعنی سوال تردد شاک این مال تلبیه. و از رد دونالا منکره در سومی داریم پاسخ میدیم به کسی که منکره پس این ستا یکی نیست که تو کجا یکی فهمیدی؟ کزالی که یوجه با علم المعانی همچنین ایجاب میکنه علم معانی و کل کلا انسانه علی قدر استعدادی اینکه هر انسانی به اندازه استعدادش به او خطاب بشه به در فهم چون میگه چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد برای این هم حبید رو میگه می می علم معالی رو میگه مخاطب قرار بدی هر انسانی رو علاقه استعداد هی فیل فهم و نصیب هی منت لغت دایره لغتی بچه خیلی کمه دایره لغتی کارگرگای اوقات آدمی که روستاییه دایره لغتش کمه اگه شما بیاید دایره لغتی که در محافل علمی و دانشگاهی استفاده میشه اون نمیتونه اون بفهمه به حد خودش درست شد و نصیب هی مل لغت والدات. فلان یوچیز و انجو خاد تبل به ما یو خاد ببیه عل به لغت العرب و اسرائیل. فلان اجازه نمیده علم معانی. انجو یخاطب به عل این که مورد خطاب قرار داده شده ما همی کوچه بازد. به ما یو خاد ببیه عل با اون ابراری که یک عدیب. باهاش مورد خطاب باقی میشه اصلا نمیفهم اگر هم میشون کننده است عدیب ملم یا عدیبی که علمام داره تسلط داره توجه داره به قواهید عرب بیاد کلام او رو بیاد گلستان سعدی اگر برای یک عدیب لذت مخشه برای یک کارگر قابل فهم نیست برای آدم عادی درست شد به لغت العرب و اصفاره اون لغت عرب و عثورش رو میدونه خب کلام زیبای اونطوری اونم کلام صادره لذت شد حالا نگاه کنی یه مثال میزنه وانا بعضو حمل بشار ابن برد بشار ابن برد شاعری است نابینا قرن 4 وانا بعضو حمل بشار ابن برد بعضیشون یک نفری از این عرب ها به بشار ابن برد گفت اِنَّكَلَّتَجِعُو بِشَيْعِلِ حَجِينِ الحجین المتفابط. گفت گف تو همیشه شعرهایی میاری حجین قاطیباتی متفاوت تو قاطیباتی و متفاوت صحبت میکنی شعرات قاطیباتی و متفاوته یعنی یه موقع یه شعرت مطل مطل تو یه شهرت هم ببینی اوف چقدر این بالاست سه سوم ستوران دران دشت زمین شش شد و آسمان گشت مثل شهر فردوسی چجوریه؟ این میگی میگه اونم میگی تو متفاوت میگی بشتر دید این طرف نمیدن گفت قاله و ما زاله گفت این کجاست و ما زاکر. کجا دیدی اینو؟ قالا گوی شرمال تو نیست؟ بین ما توسیر و نقع و تخل القلوب و به در جایی که بین ما توسیر و نقع, نقع یعنی گرد و خاک میدونی جد توسیر رو یعنی بپا میکنی در جایی که گرد و خاک بپا میکنی و تخل القلوب و دلها رو میگیری طرف خودت آه همه دلها رو از جا میکنی و زیر و نقه و تقلقل به قوله با این قول خودت این میگه چی میگه؟, میگه شعر در قضیه حماسه و فخر بعد از فتح اموریه توسط معتصم این شعر رو آمده گفته و در مقابل همه بزرگان در مقابل همه شعرا این شعرش همه ماستشونو کیسه کرد در مقام جده به قول اصطلاح آقایون جایی که همه بزرگان شعر اومدند خلیفه پیروز شده درست شد در فتح اموریه رومیان در جنگ با او ومیان در اموریه پیروز شده حالا این آمده داره تبریک پیروزی میگه در مقابل خلیفه سرآمد همه شعرا میخواد باشه میگه ازا ما غضب ناو غزب تن این ما بعد از ازا داره هنگامی که ما خشم کنیم خشم عربی خطک نا حجاب الشمس اوتم ترد دما پرده از روی خورشید میدارییم او تم ما تا اینکه خون ببارد خورشید خون ببارد. خورشید را حدتی که هجاب میکنیم تا خون ببارد. یه اعضا ما و غذتنا و قذوطتن مذرینگتن هتک جواب بزید و نا نا هجاب و شز او یعنی علهند تم تره. فعل مضارع بعد از او به معنای است یکی یکی از مواردی که ان سر فعل مزاره مقدر است و منسوب میکند او که به معنای الاعا باشد الا ان تم تر تا اینکه به وارد خورشید کون ها ما اعرنا سیدا من قبیله اگر ما آریه دادیم به سالاری از یک قبیله رفتیم یه منطقه اونجا رو فتح کردیم یا آقایی رو از اون قبیله کردیم سالار گفتیم تو نماینده ما فرماندار ما بر این قبیله هستیم ازاها اعرنا اعاره رو، و اعارتن موقعی که ما آریه دادیم به سالاری از قبیلهای زرامن بریم، زرا جمع زروه یعنی قله بلنده های منبری رو بلنده های منبری اگر نکه های منبری رو به یک سالاری از قبیله آریه دادیم اینکه یعنی منبرنشینش کردیم خطبخانش کردیم یعنی خلیفه قرارشون چون خلیفه بالای منبر میره خطبه میده. اگر ما زرامنبرم مفهول دوباره دوم ماست اگر ما ای رو در جایی منصوب کردیم سلام علیه و, و میره بالای منبر به که نگاه نمیکنه فقط میگه سلام و سلام بر خلیفه فلان میگه شروع میکنه به مدح و ستایشش. شیشی داره میگه تو مقام فخر. حالا این اگر شما به سبکی بخانید که جلوی خلیفه وایساده میگه ازا و ما و قز ابن او قز حتکنا هجاب شمس اوتوم ترده ما ازا ما اعرنا سیدن من و بیلتن زرامن برن سلا علینا و سلمو اصلا کیف میکنن اونای که نشستن تو این شعرو رو گفتی گرد وخواک غاق بپا کردی که دیگه اصلا همه چی همه ماستاشون کیسه کردن بعد نراغ و تغور میبینیم یه شعر دیگه هم از پهینه و رببتو البیت تصبل خلف زیدی لها عشر دجاجات و دجاجاتی و دی حسن و سود ربابه ربابه ربابه کنیز این بوده اینم هم نابینا بوده خیلی هم بدخوراک بوده تخم مرغ داخل شهر که میفروختن نمیخورده میخورده این معلوم چی, چی خورده لذا این کنیزش براش تخمه معسم می کرده عاشق نیمرو هم بوده بعد این شخص نابینا این کنیزه براش جمع میکرد این تخم مرغ و نیمرو می و این میخورده کفش هم می این بهتر رو برای این کنیز گفته این رو بابه حساب کنیدیه چیزی بوده تخونه جارو پارو می برای این کاراش رو را مینداخته. میگه ربابتو رب و ربه یعنی کتبانو مهندس رب دیگه میگه رباب خانو کتبانی این خونه است یعنی همه خونه ای که این تو ربابتو رب و تصب الخل خل میریزه سرکه رو تو رو تصب یعنی میریزه الخل سرکه رو به زید در روحان چون موقع روحان ها روحان محلی بوده دیگه از پی و, و اینا درست میکردن خبیه می هم موی بدی داشته هم یه مقداری به خودمون گست بوده یه این شکلی بوده بعد تخم مرغ هم تخم مرخ های محلی وقتی این ناختم میشکستن خب یه مداری همچین نامطبوع میشده این ها می برای چاشنی ها مثل که نارنج توش بریزی سرکه می ریختن موقعی که اون روغن رو, رو داغ می بکنن سرکه توش می یه مقدار بعد تخم مرغ رو توش می شکستن. این بود درست میکرد حالا نمیدونم شما درست کنید شد خوش نستش میگه که تصوب بلخلف زی لها عشر و دجاجاتی میگه این خانم ده و مرغ و کن حسن و و یه خروص داره که صداش فیده حالا ببینید چی گفت میگه اینو گفتی، این چی چیه؟ این این که مثل رو عطل مطال تطوله است یه چیزه بشار دیدی نمیفرد گفت بابا اون مقابل خلیفه و بعد در مقام جد این ها ما گفتیم این رو برای رباب خانم گفتیم که سطح سوادش عقابل هم نیست تو خونه اینو میخونه جاروی که میکنه میگه روابط ربط البیتی تصد پل خلف زیدی لها عشر جزو میخونه که کیف میکنه میگه برمیگرده بشال و میگه میگه تو از شعر امرو القیس چقدر خوشت میاد قفا نبک من زکرا حبیبن و من زدین به سقط, سقط لوا بین الدخول فحوملی و تو زحف المقراط لم یعف و رسمها لما نسجد من جنوب و شمعدی این شعر امروغیس رو محلقه رو میخونی که اف نمی کنی که چه گفت اون از این خوشش نمی اون از این خوشش میکنه. کنه اون بیشتر از این از شعر امروغیس خوشش نمی کنی فقال بشار نکولدن وجگون و موزه گفت بابا هر کدوم وجهی داره یعنی دلیلی داره و مخلی داره. قالو اول جد و ثانی اون حروف رباب تجاریت اینو من گفتم برا رباب خانم کنیز خود. و انا لا آکل بر بی من تخم مرغای بازاری رو نمیخورم. و ربابتو لها و ربابتو لها اشت و دجاجات و رباب خانوم ده و مرغ داره و دی کن و یه خروز فهیت حجمه و نیال بی این برای من تخم مرغ مرد هم مکنه و قول خودمون اون هم مرد که بهشون گندم میده و سبزی میده و چیزا خوب میده تخنهای خوبی هم میکنه توشو وها زالقول و اندها احسن و قفانط که من ذکرا حبیبن و منزلی اند این شعر من پیش پیشو خیلی قشنگتر و زیباتر از قفانط که من ذکرا حبیبن و منزلی امرو قسم معللقهش که میگن بهترین معلقه است انت پیشو خب دارید میگه و کثیرا ما و خیلی از اوغا و کسی ما تجد و نجد و شاعره و خیلی از اوقات تجد و شاعره تو شاعر رو پیدا میکنی یسهل و احیانه و یلین و احیانه پیدا میکنی یه شاعری رو که یسهل و احیانه که خیلی روان شعر گفته در آهی اوقات و یلین و, و خیلی نرم گفته حتی یوشبه ها شعرهو یوشبه ها شعرهو لغتل انقدر شعرش روانه جوری که به نصر شد انگار حرف داره میزنه شعرهای خیلی روان و عادی گفته انگار داره حرف میزن اما و و آبنتن و یه موقع شعراش خیلی قلم به بس. بس. جمع آنه در خیلی از آنها احیانا خشنه و یسلوبو محکمه حتی که انهو رو که بر جوری که داره میکوبه تو سرتو با سخه با یه تخت سنگ داره به سرت بکره این شعران کل نظال که الان حسب موضوعه هر کدوم به حسب موضوعیه که گفته یک جنگه یکی بحث تعلیم و تربیت مثلا الذی یقول فیه موضوعی که این شاعر داره در موردشه شعر و طبقته یعنی علا حسد طبقت لطی شده ها شعره و به حسب اون طبقه و جامعه جامعهیه که در این شعر رو براش میگه به حسد اونه و من خیر امثلت لها زنو حالا نگاه کن از بهترین مثال ها برای این نوع عبونواز آهی عبونواز عبونواز شاعریه که معاصره خارون و رشید و معمون و اینهاست و معاصر امام است. و ایرانی الاسلم هست مادرش مال احواز وجود این بوده شاعریه که در خمریات خیلی قول خود خمریات سروده البته تا آخرون بشه یه زهریاتی هم دار میگه بهترینش این ابو نواست. میگه ابو نواس موقعی که داشته در مورد خمریات میگفته که معشوق واقعیشه کیف میکنه از این خمریات خب نهو فی خمریاته غیرهو فی و خمریاتش کولاکه موضوعش از اوناییه که بهش علاقه داره اینجا هیچکی به گردش نمیرسه تو خمریات اما در جاهایی که داره مرد میکنه و توصیف میکنه نه شعرش میشه درجه دو فرض کنید بنده مثلا دارم بلاغت میگم حالا بیام مثلا منطق بگم خب منطقم بلاغت. ولد اما خب میشه این نمیشه ذوق من هر کسی ما میتونیم از اون اون هم من بهتون گفتم اون دریچه ز اون ملکه او استفاده کنیم این ملکهش در خمریات و هم, هم بهش نمیرسه قراست میگه وقت بر حاصل اصلب ماکان من النبی خدا همین موضوع رو با آنچه که از پیامبر ما رسیده نگاه کن فانه لما اراد ان یک تو به الی ملکه فارس پیغمبر گرامی اسلام وقتی که میخواست نامه بنویسه به, به پادشاه ایران به پادشاه ایران میخواست بنویسه اختار از حلل الفاظ لغتهای بسیار بسیار سهل استفاده کرد و اوزه ها اونایی که معانیشون خیلی واضح یعنی جوری که یه دانشجوی ترم دوم زبان ادبیات عربی هم میتونه ترجمه. اینو ترجمه کنه اینو ورداش نوش برا خسرو پرویست نامه خیلی زواد من پیامبرم برای شما نامه مینویسم به شما هشدار میدم که از آتش جهنم بترسید خیلی روان ساده جوری که چرا چون اونها دیره زبان عربی هستن مترجم باید ترجمه بکنه کلمات باید به گونه باشه که مشترک نباشه روان باشه این راحت بتونه ترجمه کنه خیلی راحت نمیشه واضح الفاظ سهل روان فقال نگاه کنیدون من محمد رسول الله صلی الله علیه و, و سلم از پیانبر خدا الان کسرا به سوی کسرا عظیم فارسه بزرگ فارس بزرگ این منطقه ایران فارس. اون موقع من محمد رسول الله الی کسرا عظیم فارسه سلامون علی من طبع الهدان درود خدا بر هر کسی که دنبال هدایت باشه هدایت هدایت و آمنه الله و رسولی و ایمان بیاره به خدا و رسولش این اتبعه و آمنه عدو شد. و که به دعایت الله دعوت میکنم تو رو به سبب دعوت خدا خدا گفته دعوت کن فا اینی انا رسول الله فا یعنی زیرا زیرا من رسول خدا هستم الان خلق کافتم به سوی همه مردم کافتن یعنی جمعید لیون, زر... لیون زرم انکان هیا و القول علی على تا انذار بشه هر کسی که بیدار زنده است تا اونی که میفهمه انذار بشه و یهققال القول على کافری و قول الهی حرف خدا تکمیل بشه حجت تمام بشه بر کافرین، باید گفته فس... فا اصل تسلم فاصلم اصل پس اسلام بیار تسلم سالم میمانی از عذاب خدا اسلام بیار تا سلامت باشی فا این عبایته اگر از اسلام عبا کردی و نپذیرفتی ف اسم المجوسه علیک پس گناه همه مجوس اونهایی که تو نمیذاری راه هدایت رو پیدا کنن علیک و گردن تو. خدا فردا تو را به جرم گناه اون حال که هدایت نشدند محاکمه خواهد کرد. همه شد خود این راحته دلیلش اینه که داره به خود رو پرویز میریسه مترجم باید این رو بگه اون باید, باید کلمات راحت که پیام رو برسه. اما وحیل اراده ان یک تو بینه اوکایدره موقعی که داشته برای اوکایدر مینوشته اوکایدر که صاحب دومتر جندر صاحب دومت الجندل منطقه این بزرگ اونجا بوده این تو جزیدتال عرب یا آقای اوکایدر که اونجا بوده کله گنده اونا بوده اونا اهل سخنوری بودن اگر اینطور ساده براشون مینوشت مثل اینکه کتاب اول ابتدایی رو بدید دست یه کسی که عدیبه خب این همچین خیلی با قول خودمون جا براش نخواهد افتاد قبول نمیکنه. اونجا کلمات اینه خود یعنی رودست نداره فخ قمل الفاظه این ارادن یک تو به و که در صاحب دومت جندله فخ قمل الفاظه. الفاظه الفاظ رو فیلی تفخیم کرد تحضیم کرد و حتی به جزل نادر فقال و یک کلام شیوا و کمیابی رو درست کرد پیان برای خدا فقاله اینطور طور حالا ببینیم اینجا چی؟ الان یه جوریه که مغول خودمون داره پیماننامه مصالحه با این آقای اوکایدر میریسه میگه که محمد رسول الله لعوکایدره از تیام رسول خدا این لام به معنای الاسد رسول اوکایدر هین عجاب علال اسلام موقعی که اوکایدر اسلام رو پذیرفت و و خلعال انداد و الاسلام و شریکان و همتایان و بودها رو کنار بسند قیل قشنگ می‌بینیم یا یعنی نه این عجاب هیلال اسلام سجه و خلع الانداد ول اسلام نوش شد انداد جمع نده یعنی همتا اسنام جمع سنم یعنی بود خب حالا که شما مسلمان شدید این قاعده اسلامه ان لنا از ظاهیته برای حکومت برای ما ظاهیه باشد از ظاهیه یعنی چیه؟ از ظاهیه من النخل از نخلت و ظاهرت و البارزت و الخارجت و الاسوار المدینه برای اون. اون نخلستان هایی که بیرون از شهر هستش خارج است از اسوار جمع سورد شهر و آبادی اون نخلستان های بیرون اونها مال اسلام اونها مال بیت المال ان الا از ظاهرت من البعل ول بور ول معام و اقفالن ارض ول حلقه و اصلاح ول و اینا مال مست من البعل ول بور عندما اوم ببین من بعد بل چیه ان نخل ان راسخته عروقه اون نخلستان هایی که ریشه شون تو زمین سفر شده یعنی درختای که نمیشه نهال نیستن که بشه انتقال بدی درختای شد. درستو من بعد بل بور چیه ول بور البور الارض ال خراب و علتی لم تزده زمینی که خراب است و باید. این من البعله این میشه بعد ولبوره از وجه زاهیه است یعنی این لنا از زاهیهته بیرون مدینه مال ما بیان باشد از نخلهایی که اونجا کاشتید و نخلهایی که استوار است و نهال نیست و نخلستانه اونا مال ما. ولبور جمع باعره زمین باعر زمین هایی که کشت نشده به اسم شماست ولی کشت نشده درست شد اینا مال بیت المال ول مآما ما باز عطب جای زاهی است، از این من بل بیانه برای ظاهیه بود میرون مدینه مال ما یعنی نخلستان هایی که نخلای کتوکولف دارن مال ما زمین هایی که کشت نشده مال بیت المال ملمعاما معاما. جمع معاما و اون سرزمینی که زمین که مجهوله مالکش مشخص نیست گزه نبوردیم اونها هم نمیتونید روش دست بذارید اونها مال بیت المال درست شد و المعاما و اقفال العرض اقفال الارز. یعنی العراض ذلتی لا اثر لیل امارت فیها زمین هایی که میشه کشت کنید توش؟ ولی هیچ اثری تا حالا از کشت توش نشد قفلت شده از کشت این عرض یعنی اون زمین هایی که تا حالا کسی نرفت اونجا قفلت شده از کشته در اونها اونها هم مال بگرمت اقوال العرض ول حلقته و سلاحه حلقه چیه؟ حلقه عبارت است از به سکون لام و حلقه یعنی جنگ افزار و سلاح یعنی شمشیر و نیزه و اینها اصله اون ول حلقه میشه با قول خودمون چیزای دیگه جنگ افزار باید بگیم مثل مثلا سپر و کلاخود و چکمه و زره و اینها و اینا, اینا رو باید از دست اونا میگرفتی یه تازه مسلمان شده بودن اینها باید برمیگشت تا اونها به قول خودمون این نباشه که اینها دست بود اینا مال بیتلمان پس گفت هرچی نخلستانه با ریشه های نخل کلوفت از ظاهیت تمنال بعد مال بیتلمان بعد بور زمینهای های مال بیتلمان معاما زمین های مچهول مالک مال بیتولمال اقفال هست زمین هایی که روش کشت نشده قبل ولش کردن هم اینطوری گرچه مالک داشته مال مال المال و جنگ افزارها. مال بیت المال ها مال المال مال. اما شما چی داریدون باقا چی مال شما و لکم از زامنتا این و لکم از زامنتا تو جای لنا از زاهیته هست اینم باید بشه از زامنتا و ان اینجا این لکم از خورجای لنا از زامنتا از جای از زاه. برای شما باشه نخلستان هایی که زامنه هستن در زمنن یعنی هرچی نخلستان داخل اون شهر و آبادی شماست مال شما ماغ هایی که توی دهتونه توی کیته خودتونه ولی اونایی که ر ده کلومه دونورتر نخلستان درست کردید ما نمی خواهیم نخلستان های داخلیتون مالا خود و از منن نخت. از زامنت هم از زامنت هم نخ نخد نخ نخد شد ماکانه داخلن به امارت اونی که داخل در امارت و عطا فده ها سور و دیوار شهرون رو پشنده مثل الان هم توی رستاها و اینها یه سری باغاتشون داخل خود رستاست درست شد؟ و تا حدودی بعد دوستا که تموم شد میبینیم مثلا ده کلومه دون ورتر هم بیس کلومه دون یه سری زمین هایی رو اونها دارند و کشاهایی مورد او اونا دیگه نه گسترش نمیخواد داشته شده و, زامنته و از زامنته و لکم از زامنتم اینه نخل ول مئین مئین یعنی الجاری الجار یلا وصله هست و قیل علماع اوله از بلکسیر هایی که داخل این اوساتون حساب آب میده به اینها نهر هایی که دارید این مال خودتون ونمعین درشو ونمعین منل معمور چشمه هایی که خودتون آباد کردید من معمور از عمران شده های خودتون یعنی نهر چشمه دارید نمیدونم کانال آب زدید بله این خود خودتون معمور ولی نه هایی که به اصطلاح مثل دریاچه باشه یا یعنی نهان فلان باشه بیرون هست اونها مال شما نیست اینم لا تو عدل کن اون شتورایی که شما ببرید به چرا لا تو عدل صارهت از صاره یعنی گله گله که میچرونن گله شتوری که میچرن کل لا تو عدل برگردونده نمیشه گله های شما یعنی اگر بردید بیرون جله رو توی مرتعها سینکش از علوفه های بیابون خواستید استفاده کنید می کنید لا تو دل سارهت یوریدو انماشیتقوم لا تو سرفو انمرهندو ریدو از که قصد کنه شتورانشون چرا کنن اونها رو بر نمی ولا تو و فارده داشت شو لا تو عدو و کن فارده دارست شد لا ال عدو الفارده یعنی حضای دل الفریزه لا تو عدو و کن یعنی یک بار شما به اصلاح مالیات میدید دیگه اگر مازاد بر اون چیزی داشتید دیگه مالیاتی ندارید لا توعددو به حساب نمیاد فاردتو کم این سارختو کم فاردتو کم این رو نگاه کنید بعد اون سج و عبارات لا توعددو فاردتو کم الفارده یعنی از ظاهدتو علال فریزه یقونو لا توزم و فاردتو کم الى غیرها دیگه سو اون مازادی که شما تولید کردید بر اصل اضافه نمیشه فتوعددو و تو عدم اها و ت تا با اون حساب بشه و مالات گرفت بشه. نه نه توعد دو فتکن و. و لا یه ذر و علیکن از لبات رو و لا یوه ضر و ینی لایوم نهاب منع نمیشه من بر شما هیچ گیاد حالا بیابون استفاده کنید خار بکنید گیادم استفاده. تویون از سلام به که اقامه نماز کنیم لوقت ها اونم سر وقتش و تو ادون و تو اتون از زکا زکات پرداخت کنیم علیکم به زالی که الله و میسا این اهد و میسا به الهی باشه این چقدر حالا ما خودمون که 20 بار اینو تدریس کردیم و غیره با ترجمه لغات و با مواردی که هست گفت چرا تون اگر به این صفتی و محکمی برای اون نمی نوش و می آم نامه اون مینوشت یا حالتی بود که ممکن بود اصلا اون آقای وکایدر بخنده و قبول نکنید و همچین مرد و مردونه اومد به میدون پیامبر خدا و صفت و محکمت این یک و تکون و مطابقت حال فیما و کلام لیمخت از الگال ای زن فیما یتسلق و قائل من ایجازن و اعتماد. گاهی اوقات اون ایجاز و اتناب است که اسباب مطابقت کلام با مقتضای حال میشه ولی اجازه مباطنه جایی هست که شما ایجاز رو میارید ولی اتناب مواقعه او، هم هست باید اتناب کنید کل ذالک که الان حساب حال سامه همش به حساب حال سامه و الان مقتضا مباطنه قول بردقه مقتضای جایگاه قول پس مثلا شما با یه آدم باهوش با استعداد نابغه داری صحبت میکنی اونجا باید خیلی خیلی خلاصه بگی چون بار اول میفهمه دیگه تکرار هم لازم نیست خسته میشه پس پس انسان باهوش النزی تکفیه اللمحتو یعنی آقل یکفیه لشاره یک یه اشاره براش کافیه زکی النزی تکفیه اللمحتو یه سنه آدم باهوشی که یه اشاره هست یعنی یه اشاره علمه حتی یعنی علمه اشاره دار کافیه برای افایتش می کنه یخسن و لحولیش هست اما یکه آدم کودنی پیر خرفته کودن از ذر باره حوشیب سطح پایینه یا بچه است، یا مکابر آدم لجوجه بعد اینقدر دلیل باراش بیاری که دیگه دنده لجاجتشو خورد کنه و القبی و اول مقابر رو اونی که لجاجت داره یجمول و اندخه تابیه الاطناب و الاسخاب اینجا باید خیلی اطناب زیاد و ازا تعمل تل قرآن الكريم. وقتی شما قرآن کریم رو دقت میکنین رعی تقوی ازا خاطب الارب و الاراب وقتی که می‌بینی عرب اهل مکه بل اعراب نشین نشین‌ها رو مورد خطاب قرار میده او جز کللی جز خیلی خیلی موجز آیا سوره های کوتاه قرآن این سوره هایی که مکی هستند و در انتهای جزء 29 حسی و 30 اینها می‌بینی همه سوره های مکی در مکه نازل شده در اوایل بعثت پیامبر مورد خطاب عرب و اعراب ببین چقدره کل و اخرجن کلام مخرجن اشاره و الوحی کلام به شکلی شده که انگار داره رمزگونه با اشاره و رمز وحی داره صحبت میکنه وحی یعنی اشاره رمز الوحی یعنی ار رمز با رمز و اشاره هست حصف زیاد داره اضافه گویی کم داره خیلی خلاصه است چون اهل سخن هست. و ایزا خاطبه بنی اسرائیل اما وقتی داره با یهود بنی اسرائیل صحبت او حکا یا داره کلامی از اونها نقل میکنه اصحبه و حتنه خیلی درست فهم ما خاطبه بهی اهل مکشته قوله تعالی از مواردی که مورد خطاب قرار داده اهل مکشه رو اینه مقاکنید الذین تدعون من دون الله تدعونه یعنی تدعونه هم آلهتن اول و دومش افتاده این بودهایی رو که شما میخوانید اونها رو خدا مندون الله من دون به معنای غیره در حالی که غیر خدا هست چون مشرکین خدا رو می‌خوندن، خدا رو قبول داشتن بودها رو قبول داشتن گفته این بودهایی که شما غیر خدا صدا میکنید و میخوانید درست شد لن یخلق و زبابا اینها یه مگس هم تا حالا نیافریدن خب و ولوشتم اوله یعنی نخواهند آفرید لن مستقبل معکده میگه این کسانی که این خداها تونه همه رو یه جا جمع کنید اگه تونستن یه مگس درست کنه لن یخلق و ولو ولوشتم اوله اگر همه هم دست به دست هم ده و این یسلوب هموز زبابو شیعه یعنی از زباب الفلامش از را مهد میگه حالا همین مگس ناتوان، اگر از اینها یه چیزی بدلسته فرض کنید این ها یه دارن ما مگس اومد ورداشت یه گرمتلا داشتن مگس اومد و ورداشت و این یسلوب هم و زبابوش ها لایستن غزو همه. نمیتونن اون از مگس میگیرن حتی نمیتونن حتی خودشون رو از مگس بگیرن زعوفت طالب و بالمترو. این زعوفت سیغه سیغه عجبه میگه عجب چقدر طالب و مطلوب هر دو ضعیف طالب کیه انسان که دنبال مگسه میدونه مطلوب که اون مگسه میگه عجب هر دو ضعیف از مگس ضعیفتر چیزی هست این انسان حتی نمیتونه بره اگر یه چیز قیمتی داشته باشه مگس ازش به نمیتونه ازش بگیره چقدر قشنگ و چقدر زیبا گفت و جد و هجدو خطابن لبنی اسرائیل و نمیابی خطابی برای بنی اسرائیل باشه الا و حوام مصحبون متود مگر این که فیلی اتناب داره چرا لعنه یهود المدینه کانو یرونه انفسهم اهل علم و اهل کتاب چون اونا اهل علم و اهل کتاب میدونسته و تجاوز و الحدف المقابلت و الان بخواهم دلیل خیلی لج و انعاد داشتند. چون خودشونو بالا می‌دونستند، هر رو قبول نمی‌کرده. و غد یکونو آل قرآنو آل کریمو نزل لهم منزلت سیغار. اینجا قرآن می‌ده، اونها رو نازل به منزله قیصار ال قرار داده. و غد یکونو آل قرآن و آل کریمو نزل لهم منزلت سیغار اونها رو به منزله ادم‌های ناتوان عقلی قرار داده. چطور برای یک کسی که بهره هوشیشتم شما توضیح بدید برای اونها هی توضیح توضیح توضیح یعنی چی یعنی شما بابا نمیفهمید باید دارتون توضیح بده اونها رو نازل به منزله قصار العقول کرده به نبذل حدیث علیه در سخنی که با اونها میگه خیلی اتماق کرد و یش شهاد از علی ما حکا و انهم و ان مقدار معرفت هم به مافی اسواره و شهادت میده به این دیدگاه ما که اونها رو آدم های حساب کرده آنچه که حکایت کرده از اینها و از مقدار شناختشون با آنچه که در هاشون هست هاشون هستدیدید دیگهگه مثلا لظیر اون ملد دووراتصبحبلم یحم رو ها که مسله همار یحم رو از هانی اینها رو قطه شما ادعاتون زیاده آن چیز سرتون ولی اجازه مواطط یخصنفی ها جا جااز هم یه جایگاهی داره که اونجا خیلی زیباست که شکر جایی که شما تشکر کنید خیلی حرف بزنه اونمرسته دیگه گفتی ممنون با شکل قبول ولی اعتظار جایی که داری عذر خواهی میکنین و تضیح رفتی به یه نفر با قول خودمون تعزیت میدی آه خدا پدرتو رو خدا رحمتش کنه. با که اسلام محشورش رو اسلام دیگه حالا ه ببود و تازه. وا اتاب یه چیزییداری خلص اتتاباب میکنی. نباید این کارو میکردی خوب نیست آدم به پدرش به اعترا اولا اینکه تو احساس توضیح می‌کنم که بابا با شماها واسه چی ناتری می‌دیم ولعطاب الاغیر زاله ولل اعتماد موازو اما احنا هم جای باخای داره چقدر تهنیت وقتی یه نفر بچه‌ش به دنیا اومده خدا بهش پسر به داده یا ازدواج کرده داری تبریک می‌گی اونجا بولبول زبانی می‌کنی خدا ان شاءالله که بهتون خوشبختی بده خدا ان شاءالله این فرزندتونو نگه داره شما در سایه ایشون باشید ایشون در سایه شما هر چی اینطوری تازه گوش میکنه میره بالا میاد که تهنته و صلح بین این فريقه این دو تا فریق دو تا گروه رو میخوای با هم آشتی بدید اونم از این با تعریف کنی برای اون ازون برید یه زن و رو میخوای آشتیشون بدی دو تا دوست رو یه بار تعریف کنی برای وسطشون واشیه معجزه‌ای آشتی کنید و صلح بین هر این یعنی قصد از قصه میگی خب قصه نمیتونه تو دو خط باشه یه خط باشه آه. قصه درازه ولی خطابته وقتی بالا منبر می خواهی خطابه کنی تا به یتیما کمک کنن چند پله بری بالا و بایی سیب بگی مردم به ها کمک کنید و سلام علیکم و رحمت الله و بگو. نمیشه فی امر من امور العامه خطابی که در رابطه با یه موضوع آب مثلا فصل کنیم جنگ صلح این رو چه داروشه ولی زوغ سلیم القول الفصل فی حاضر شون میگه خلاص زوهر السلیمی خودش میفهمه این رو کجا باید اسناق کنه چقدر باید اسناق کنه چطور بگه اینا همه رو ترجمه شما واسه ی کنه موضوع السلیمی رو پیدا میگه عمل امرستانی سانی این ام معطرب عمل, عمل عمرو سانی الضی یبحث فیه یبحث فیه علم المعانی عمل امرستانی سانی عمل عمرو سانی الضی فیه علم المعانی امر دومی که علم معانی درش تهدیف میکنه، کنه میکنه می کنه فقوه درست تو ما یستفاد مند کلام زمنن به معونت قرار تهدیق در مورد چیزهایی است که از ضمن کلام فهمیده می اون معنای اولی نیست معنای سانویه مند کلام زمنن به معونت قرار این فعل عبر اینجا معنای سانوی داره این ندا اینجا معنای سانوی داره این نهی اینجا معنای صوی داره اینکه داره خداوند تا میگه قول تم او فن نمیر وملا نار این تمت او این نشه کهکن بعضای یارو بگه خدا خودت گفتی که ما گرفت کرد نه میگه بخرینه فنمیر و کاملا نار باید میفهمیدی این تهدیده. اینا روره می ماوانیم نهحو یوری رو که انل کلامد یفید و و اصل وزحی معن با اصل ووضعشون معنای اولیش یه معال میرسونه ولا که نهو قد یا عدی علایی که معن جدید ها گاهی معنای جدیدی میاره، یفت همام از سیاق که از سیاق فهمینه میشه و طور شدهان و حال کلام لوتو اونو میرسونه و طور شده هر حالو عتی غیرفی ها اون حالی که این درش گفته شده. ترشده اله ترشده اله هل حال علتی غیل و فیها فیغولو نکن پس گاهی اوقات اینطوری به میگه این الخبره قد یفید و تحسر گاهی اوقات یه جمله خبری مفید تحسر که ظاهرش خبر اما حسرت داره میخوره اینه میگه ولهم قد یفید و تحجیز هم گاهی دلالت بر تحجیز میکنه جه ان كنتم في رائبن بمنازلنا على عبدنا فتع به صورت ممثل فتع به صورت ممثله یعنی شما یه صورت بیارید مثل قران سوره هاش نمیتونید بیارید تعجیز و نه قد یفید و دعاء نه گاهی اوقات دلالت به ربنا الله تو اخذنا ان نسینا و عثنا لا تو اخذنا و استفان قد یفید و نفی استفهام گاهی اوقات مفید نفیه مساعلي استوى الذين و والذين لا يعلمون یعنی لا يستوي الذين مفید في ذنف الا قيل ذلك ما رايتوه مفصلا في هذا از موارد دیگه ای که شما تو این کتاب به مفصل دیدید و منم میسازم و یقول لك ان الخبر قد يلغ موکدا حالا اینو باز ما گفتیم این اوقات خبر موکد میشه لخال ذهن برای کسی که خالی از ذهن مثل سمع انکن بعد از آن کلام عیتون فقط غیر گو غیر موکد غیر موکد غیر موکد میاد لمنکر جاهد بر اون که خیلی خیلی منکر میگه الहूکوم الاهو الاهون واحد میخواد بگه چی میخواد بگه اصلا کار شما ارزش نداره اندهو دلایل و شواهد لو تاملَهُ لارتد عن انکاره اینقدر دلایل و شواهد است که اگر تامل کنه دیگه انکار میکنه انکار خودشو دیگه میذاره کنار لمنکر جاهد لقر از این بلاغی بدی به خاطر فرز بلاغی بدی اراده هلمتکلم که اراده کرده اون رو متکلم من خروج اما یختزیه ظاهر الکلام که کلام و از ظاهرش خارج کنه کلام ابتدایی دیگه نمیاره برای خالی و زن کلام انکاری میاره و یوشد که این ملمانی الانالقصر تو باب قصر ارشاد میکنه علم معانی تو رو به اینکه که انل قصر قدیان هو هل مناهی شد تا در قصرگاهی اوقات نواهی مختلفی را عدیب مد نظر داد که انیت تجه هیلال قصر اضافی میره به سوی قصر اضافی حالا از نوع قلب افراد تعییل که با هم خوندیم رقبتاً فی الموبالغه به جدی که میخواد و کن فیغولا المتفاقی آدم خوشمینی داری میگه و مد دنیا سوا من لذیزه دنیا نیست مگر یه خواب خوش تنبه ههو تباشیر و سواه که بشارت‌های های صوبگاهی آن، اون طلوع فجر و روشن شدن های صوبگاهی اونا به قول خودمون بیدارش میکنه خواب لذیز رو به بیداری تبدیل میکنه روشنایی صبح اون رو عبه میگه دنیا یه خواب خوشیه که بشارتهای صبح گاهی آدم رو از خواب بیدار میکنه یه خوشبینه به دنیاست میگه خواب خوشه دنیا رو منحصر کرده در یه خواب خوش درست شد؟ قصر اضافی دیگه قصر محصوف در سفر و یقول المتشاهم اینم مبالغه میکنه متشاهمه بدبینه میگه حال الده رو الا لیلتون؟ روزگار نیست مگر یک شب تال ها اونم شبی که خیلی بیداریش طول کشید شب طولانی تنفسو یعنی تا این شب دمیده ان یوم احب احد بعظیم اهم اصیب که دمیده شده این شب از روزی که جرم بوده و طاقت فرسا شدید اصیب یعنی خیلی طاقت فرسا میگه یک روزی گرم تابستونی خیلی شدیدن سخت انسان زحمت بیناهایت وارد شب شده حالا شب هم طولانی شده تاریک و بسیار طاقت فرسته میگه دنیا رو سیمینه میگه وقت یک اونمه مرامل از تحریز گایی اوقات از مرامی از تحریزه یادتونه گوشه زدن نقوله ای این نمایت تذكر آلو لال مطلب دقیقی رو میگه، بعد میگه این نمایت ذکر آلو لال با. اینو آدمهای چیز فهم می‌فهمن. او علاوه اینو درک می‌کنند، یعنی شما ما که اینو درک نمی یا علم از لایسال قرآن می‌نال آیات الکلمت انب. یعلم از انب یعلم از اون ظاهر معناها. پس خدا نمیخواد ظاهر معناشو زمان که کی میفهمه؟ اوغلا اونو اونم اینکه میگه این مطلب و اغلا میفهمن؟ یعنی تو که توش اشکال داری جزش نیستی ولکنها تحریز اون به مشرکین این کنایه زدن اون و انهم اون به فرط هم و قلب تل علیهم فی حکم من لا ندارم این اینکه این مشرکین به خاطر لجبازی و به خاطر اینکه هوا و حوص بر اونها قلبه داشته به منزله کسی هستن که اصلا هر رو ندارم. که اینا درک و یعتی که علم المعانی الا ان مما الفصل فی بعض انوائی تقریر المعنی و تثبیت او فی ذهن سامع از اقراض فصل در تو باب فصل است اینه که میخواد جا بندازه معنا رو و تثبیت کنه اون رو تو ذهن سامع و اون کلام دوم همین کلام اول دو میرسونه تاکید اونه میخواد اینو جا بندازه با دو تا زبان بفت. و مد دهر رو این لامن روابط قصایدی از غول تو شعران از به دهر من شد. کشوری متن عدل خون. کمال اتصال و شبه کمال اتصال. درسته؟ و لعل فی هزه کلمه الموجزه شاید در این سخنان موجزی که ما براتون گفتیم مگناع فی بیان مال علم معانی. کناعت باشه برای آنچه که در علم معانی است. من اثر فی بلاغت کردم، از تحصیلش در بلاغت کردم، شما بتونید جمله اگر کنید. و یا و ما یومد دو به هم ناشه فل عدب من علی. و آنچه که کمک میشه، آدم تازه وارد ناشه کسی که داره تازه شروع کرده بلاغت بتونه از این کمک بکند. و ما یومد دو. فی بیان مال علم المعانی معانی من علی. فی بلاغت الکلام و ما یو و ما یو مدو به ناشه فی العدب و ما یور او من طریق لحسن تعلیفها لحسن تعلیفها و اختیار الاحوال و المواطن علتی تغالفی و آنچه که ترسیم میشه برای او است راه برای زیبایی تعلیفش اختیار احوال و مواطنی که این کلام درش گفته میشه در اون مواردی میگه همین مقدار شاید شما رو کفایت بکنه که بتونید اونچه که خوندیم رو داره کنید مؤفق و موفق باشید علم معانی تموم شد یه مقدار مختصری علم بدی هست ان شاء الله خواهیم خوند و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین